سلام وقتتون بخیر هر جا که هستین حالتون امیدوارم خوب باشه همیشه سرزنده و سلامت باشین یه دوست خوب دیروز برام یه پیغم میداده از فیسبوک به خاطر این مطالبی که نوشتم هایی صدا و ها اینا میخوام اول نامهیشون رو بخونم براتون بعد جوابش رو بدم البته جواب طبیعتا مثل همه نوشته هم نظر شخصی خودم هستش و شامل طرفدار بودن از کسی کی گروهی و یا از طرف کسی و گروهی نیست و کاملا شخصی هستش نامه میگه دوست خوبم رمای عزیز سلام است که تو من رو به عنوان دوست پذیرفتی و من این بابت خوشحالم و ازت ممنونم پروفایل رو پیگیری میکنم بطاله رو که تو پیجا و گروپ های دیگه میذاری میخونم و گوش میدم زیباست و البته واقعیت مزاهم شدم تا یه مقداری باهات دردل کنم و شاید هم مشورت این میگم شاید نبین خاطر که دوست ندارم با تو مشفرد کنم اتفاق قصد اولی هم همین بود این خاطر که گفتم شاید اون اونقدر ذهنم درگیر رو پرکنده است که نمیدونم از کجا شروع کنم و چی بگم و راجع و چی باهات مشورت کنم واسه همین هم گفتم تا هرچی پیشاید باشد که خوشاید بگذاریم آه... یه چیزایی نویشتن که بحث همین دوست خود خودش هستش خو... حالت خصوصی هستش اسمشون اینا شغلشون بعد نوشتن که چند ماه دیگه سی سالم تموم میشه ساکن مشهد هستم سال هاست تنها مثل دیگران هرچی دارم جلوتر میرم بیشتر احساس تنهایی میکنم از طرف هر روز که به سی سالگیم نزدیک میشم انگار به مرگ نزدیک میشم دوران خوشی و موثر بودن گذشته دوران رو به اوج گذشت از سی سال به بعد مسیر فرود هست دیگه از اون شادابی خبری نیست مدت هاست دنبال کسی میگردم که برای من هم برای هم با هم باشیم اما خب پیدانه شده البته نه اینکه که شده باشه اما همیشه اون کسی که دیگه, دیگه این رو دوست داشته و من چون اون رو دوست داشتم و آرامشش واسم مهم بوده رهاش کردم تا با اونی که دوستش داره با آرامش باشه حرفی نیست اون در آرامش باشه من هم در آرامش و آرامشتم هر طور اون بخواد و اینطوری هم من همیشه تنها موندم این کارو به خاطر دوست داشتن کردم گله‌ای ندارم این راهی بود که خودم انتخاب کردم هر چند که سخت بودم ما دیگه همیشه واسه سوال بود چرا کسایی مثل ما نمیتونن با خیلی یا خیلی کم پیش میاد که بتونن با اونی که دوستش دارن و اونم دوستشون داره با هم باشن واقعا چرا تو میدونی راما حالا روز دوستای غیر فیسبوک و پروفایل حالا روز دوستای فیس و پروفایل اکثر دوستای فیس هم رو که میبینم همهشون از تنهایی گله میکنم ممکنه روزگاری با کسی بودن که همدیگه رو خیلی دوست داشتن یا شاید هم همیشه تنها بودن، اما در نهایت همه تنها خودم یه تشبیه دارم به دوستان میگم حکایت ماه حکایت آدمایی هست که همه روی دایره پشت سر هم ایستادن. هر کس نفر جلویی‌شو دوست داره، با از اینکه دقیقاً پشت سرش کسی که اون رو دوست داره. اینم این دور باطل ما. نمیدانم چطور پیش میاد نمیدونم چطور پیش نمیاد دو نفر رو به روی هم برای همیشه هم دیگر رو دوست داشته باشن واقعا چرا روموی عزیز چرا مثلا تو دوست خوب وقتی استاتوسات رو میخونم و اون چیزایی که به فرهاد عزیزت نوشت می مینویسی از صمیم دل به تبریک میگم و با خودم میگم خوش با حال روما کسی رو داره که هم دیگر رو دوست دارن حتی اگه کسی مدت زمان دوستی تون رو ندونه وقتی لحنتون رو میخونم احساس میکنه که سالها با هم هستین به هر دوتون هم تبریک میگم ولی وقتی زمان آشناییتون رو دیدم دیدم زمان زیادی نیست که با هم هستین امیدوارم که همیشه با آرامش و آسایش در کنار هم باشین اما واقعا یه ساعت تو ذهنم هست روما جان چه تضمینی برای این رابطه زیبا هست روما و فرهاد عزیز امیدوارم که همیشه در کنار هم باشن اما اگه روزی فرارسید که سه نقطه. چرا هر از ما بعد از زمانی که با هم هستیم باز هم از هم جدا میشیم؟ یکی از دوستان می گفت به خاطر تنب و طلبی مرد هست گفتم شاید اما باز هم اگر واقعا همدیگه رو دوست داریم چرا با هم نمیمونیم؟ چرا این همه جدایی کاکتوس رو گوش کردم دیدم شاید یه حس دوری از عشق توش هست که داره واسه اتفاق می افته نمی دونم. شاید اشتباه میکنم. و امیدوارم همین طور باشه راست میگی رمانی عزیز اما یه چیزی هم هست اگه خارهای کاکتوس واسه همه هست تا از خودش مراقبت کنه اون عشق واقعی کجاست کاکتوس خارش رو واسه اون جمع کنه اصلا آیا همچنین همیشه اتفاق خواهد افتاد یا همیشه در حد یه رؤیا یه خیال قشنگ باقی مونه یعنی همه ما ها همیشه باید در مقابل خودمون از خودمون دفاع کنیم و هیچ وقت به دنبال اونی که باید و هیچ وقت به دنبال اونی که باید نباشیم یا نه این که واسه یکی باشیم و در مقابل دیگران از خودمون دفاع کنیم ای بابا بگذاریم مطمئن تمام میکنه و خستنا بشید و از این حرف و شبت آرام میخوام جواب دوستمون رو جواب این عزیزی که طبیعتن. هم برای من عزیز هستم به خاطر اینکه که اولا تشکر میکنم که مطالب من گوش میدن چون در خور گوش دادن شاید نباشه ولی این عزیز افتخار میدن که به مطالبم گوش بدن ممنونم این وقت رو میذارن قضیه دوی که میخوام مطرح کنم قضیه روبه اول بودن هستش دوست من چه کسی عنوان کرده یا چه اصولی چه فلوچارتی چه قانونی عنوان میکنه که سی, سالی، سی سالگی یا ورود به سی سالگی یعنی به افول بودن و افتادن تو سراشی بیر زندگی من سی دو سالمه و فرهاد رو فرهاد نوعی میگم و من رومای نوعی خودم رو میگم دو هفته سه هفته یک ماهه فوق شناختم دو سال هم تنها بودم چه تضمینی بود که پیدا کنم یا نکنم؟ مگه آیا قراره که حتما بتونم که چون سی سالم شد دوره اکسپایری من فرا میرسه مگه چه چیزی هست؟ مگه آدمایی که سن یا هفت ساله نمیتونن برای خودشون یار بگیرن یا به قول خودمون بیف بگیرن یا حتی طرف مقابل رو نقط مقابل رو بگیریم آدمایی که بالای سی سال هستن نمیتونن ازدواج بکنن اونایی که هستن، هترو هستن. یعنی این قانون قانون گذاشتن سن سی سالگی و روبه و فول بودن و دوران خوش و موثر سرگذاشتن اتفاقا دوران خوش و موثر تازه شروع میشه تو سی سالگی من اینو دارم تجربه میکنم خودم استقلالت رو به دست میاری. من جز آدمایی بودم که داخل ایران میتونستم چند جا کار دولتی پیدا کنم فقط به خاطر اینکه پام گیر نباشی هیچ وقت این کارو نکردم چرا که میخواستم همین بعد دوران سی سالگی خودم رو مستقل احساس کنم. هرچند امیدی شاید نداشته باشم آخر ماه رو میتونم برسنم یا نه من نیازی ندارم که با پول زندگی کنم پول همه چیز نیست میشه با بدون پول هم گذرون یه جایی کار کرد و با اون زندگی کرد و دردسرهای کمتر داشت نمیخوام به هاشیه برم این قانون سی سالگی رو کاملا باش مخالف هستم چین قانونی وجود نداره که چون سی سالگی گذشتیه رو سرآشی سراشیبی افتاد اصلا اصلا اصلا تازه سی سالگی اوج جوان بودن و با بودن و شادی خورمی یه گی محسوب میشه به نظر من مخصوصا گی, گی ها که سراپا شادی هستند در رابطه با مسئله دوم احساس تنهایی کردن بود گفته بودین که احساس تنهایی میکنین و همه تنها هستیم و بعد این احساس تنهایی خیلی سخته دوست من من هم احساس تنهایی میکردم و این احساس تنهایی بعضی وقتها خیلی عزیز هستش خیلی دست نیافتنی نفتن، هستش چرا شاید بگین که چون الان تنها نیستم این حرفو میزنم نه ربطی نداره من اگه شخصی بود که اذیتم میکرد فرهاد نبود هر روز آرزو ارزو میکردم که تنها باشم ببین مسئله خیلی ساده به نظر میاد اگه شخصی نبود که اذیتم کنه یعنی فرهاد شخصی بود که اذیتم میکرد هر روز آرزو میکردم تنها باشم از دل من وقتی که تنهایی تنهایی خودتی دیگه مشکلی نداری تنها چیزی که تحمل میکنی تنها بودنه ولی وقتی جفت شدی اگه انتخاب اشتباه باشه باید یه نفر دیگرم تحمل کنی یه نفر دیگری که اشتباه انتخاب کردی یه نفر دیگری که داره به خودت به ایدولوژیها ها توهین میکنه یه نفر دیگری که اصلا نمیتونین حتی بوی هم دیگر رو تحمل کنی یه نفر دیگری که نمیتونه قیافه هم دیگر رو تحمل کنین خیلی چیزا، نوط بسیار ریزی هستش که این نکات ریز رو شاید بعد از این که آدم بخواد یکی رو برای زندگی انتخاب کنه میتونه دیسcoverبل کنه به بفهمه و اینا رو باشون رو بشه واسه همین بعضی ها بعضی این تنها بودن خیلی خوب هستش مگه چه لزومی هست آیا این حتما باید یه قانونی باشه چون من سی ساله هم و چون تنها وای نباید تنها بمونم نه اعتمالا من پنج ساله بیو تنها بمونم اعتمالا هم نه اعتمالا بدم آیا قانونی هست نه باز پولمو رو در میارم بعد میرم زندگی میچرخونم سگ نگر میدارم گربه نیگر میدارم ببینین تعریف رو باید دوست کرد همونطور که ما میگیم نمیشه به همونطور که ما به استریت ها میگیم یا هیتروسکسال ها میگیم که ما هم مثل شما نرمال هستیم شما مخالف دوست داریم ما موافق رو دوست داریم همینطور به خودمونم باید بگیم که عزیز دل من وقتی که یه نفر تنهاست میتونه با خیلی چیزا اونس بگیره میتونه خدایی داشته باشه این خدا من کار ندارم خدای اسلام خدای چی خدای چی میتونه با یه گربه زندگی کنه دیگه این مشکل خودشه با گربه نمیتونه لب بگیره فرزن واضح حرف میزنم اوکی ولی میتونه جایگزین داشته باشه این تنهایی حتما راهشی نیست که یه پسر باشه مسئله سوم ثوم که گفته بودین با یه نفر دوست بودین ظاهرا ولی اجازه دادیم بره چون اون یه نفر دیگه رو داشت این دیگه کاملا تقییه یعنی با شما ارتباطی نداشت و اون شخص رو دوست داشت و این, این میمونه که من الان متوجه بشم فراد یه نفر دیگر رو دوست داره و من بافشاری کنم روی این که نباید با من بمونی من چه این حقی ندارم و طبیعتاً اون مال من نیست و باید بره این انتخاب اشتباه هستش که از اول باید به خاطر همون تنهایی که حرف بحثش رو زدیم اشتباهی صورت نگیره چون تنهایی بسیاری اوقات باعث میشه که به همه آدم رو کنه چه خوب و چه بد و این هم بسیاری وقتها عذیت میکنه یعنی میبینی که اجازه دادی بیاد ولی حالا باید بره ولی خب اونم نمیشه چون دل اونم باید برنجه دل خودت هم باید برنجه مسئله مسئله پنجم نوشته بودین که چرا آدم هایی مثل ما نمیتونن کسایی رو که دوستش دارن با اون باشن ببینین حتما نیاز نیست که تو جامعهی که ما هستیم همه چیز به عنوانی مدینه فاضله پیش بره ما همه گی هستیم ما همه میگم در نظر بگیرین من نمیدونم مشهد چقدر جمعیتش فرض میکنیم از اون مشهد دو درصد گیه هستن پنج درصد گیه هستن از اون پنج درصد دونیم درصدش آفت شدن یعنی گفتن گیه هستن دونیم درصدش نگفتن گیه هستن پس تو دونیم از اون دونیم درصدش اصلا واقعا چقدرشون ای هستن که فیلتر شد شد دو نیم شد نیم درصد شد دو درصد، از اون دو درصد اومدن و یه نفر ایدال پیدا کردن طبیعتا کار سختیه. اینکه محال باشه نیست ولی کار سختیه و تجربه شخصی من من از سال 1378 توی اینترنت هستم و از اون موقع با اینترنت سر کار دارم. تجربه شخصی من، نشون داده از اینترنت به هیچ عنوان نمیشه پارتنر پیدا کرد جای خوبی نیست face to face باید باشه یا یکی معرفی کنه نمیگم ولی اینترنت جای خوبی نیست من نمیگم اینترنت بده من نمیخوام کلیشه حرف نم من نمیخوام رد کنم کل اینترنت رو ولی جایی نیست که از اونجا بتونی برای خودت یه پارتنر درست کنی یه پارتنر ببخشین اختیار کنی دوست اختیار کنی واسه همین اصلا این رو رو روی روی رو اشتباه میدونم که چرا آدمای مثل ما با کسی که دوستش داره یا دوستش داریم بتونن بمونن حتما میبینین من اگه رابطم ایراد داشته باشه به رابطم فکر میکنم من به خودم فکر میکنم آیا اینکه تو فیس همه میان حالا این بماند اینو یه جای دیگه جواب میدم بهتون آره همینجا هم میگم مورد شیش این بود که نوشته بودین همه بچههایی که تو فیس هستن اکثرا تنها هستن آره عزیز دلم منی که تا یه ماه پیش هر روز صبح تا شب تو فیس بودم لایک میکردم کامنت میذاشتم صدا ضبط میکردم از وقتی که با فرهاد داشنا شدم اینطوری به خودم دستور دادم که هر روز یه تونه ویس میتونی ضبط کنی اونم اگه موردی داشته باشه که وایس خور باشه به خودم ازش از داشته باشه برای وایس کردن و یه دونه مطلب دوی ویبلاگم بذارم تموم شد رفت پس آدمایی که بیان فیسبوک طبیعتا تنها هستند و اون فیسبوک هستش که اونها رو به نوعی میخواد مشغول کنه و تقصیر ندارن نسبت به اینکه که چی کار کنن چی کار نکنن یعنی فیسبوک فیسبوک شده یه جایی برای ایرانیهای گی تنها چون آدمایی که موارد خیلی خوبش رو دارم ها میتونم بهتون بگم کسی که کار داره نمیاد هیچوقت فیسبوک من نمیگم اونایی که میان فیسبوک خدایی نکرده خدایی نکرده علا فن نه اینطوری غلمداد نشه من میگم اونایی که میان فیسبوک تنهان سرن. چون چیز دیگه ای ندارن من وقتی که بی‌فهم رو دارم ببخش من با فرهاد کل روز و شب رو با هم هستیم یه جا زندگی می من کم میارم از از فرصت بهش وقت بذارم چطوری با میام با فیسبوک هم بگذارونم. آره بعضی وقت یه ساعت با هم میشینیم چک می کنیم همه چیز رو میاییم کنار یعنی این هم هستش واسه همین بعد این فیسبوک خودش یه شده یه مکانی برای تمام آدم های که تنها هستن حتی غیر گی که تنها هستن واسه همین نمیشه گفتش که چون اینجا همه تنها پس همه گیی ها تنها این مثل سفرنامه ناصر خسرو میمونه که از کمربندی شهر رد میشد میبینه جلوی یه کاروانسرهای شیش تا کور نشستن بعد می که فلان شهر کل آدماش کور بودن دیگه داخل شهر نمیره از همون کمربندی بندی رد میشه ما نمیتونیم چنین قیاس به کل بکنیم بعد نوشته بودیم که تزمین رابطه منوفرها چیست هیچ تضمین وجود نداره هیچ تضمییننی همینطور که برای رابطه زناشویی و احساسی پدر مادر شما و پدر مادر من وجود نداره اگه قرار باشه با یه کاغذ اون نگار داشته باشه اون زندگی نیست. پس من اینکه به یه کاغذ نمیخوام دل ببندم فرهاد رو تا وقتی که صداقتش وفاداریش امیدش همه چیزش برای من تموم, تموم کرده باشه مایه گذاشته باشه عزیزم هستش منم هم همینین. و او بود. نطورداری شاید نکردم نمیدونم ولی میگم بهتون. نوشته بودن چرا نمیتونیم بمونیم؟ عزیز من تا زمانی که دل اون بخواد یه نفر خیلی خوشگل باشه پوستش این رنگ باشه قدش این باشه چشش این باشه این باشه اون باشه این باشه اون باشه نمیتونیم دنبال چیز به درون باید نگاه کرد یه چیز بگم بهتون باور کنین این فرهاد یه پسر خیلی قد بلنده، خوشگل، و خوشتیپی هستش، خوش هیکلی هستش. از من خیلی خیلی سرتره، خیلی خیلی سرتره. ولی رفتارش طوریه که به من میفهمونه که میگه آقای روما خان شما اونقدر عزیز هستی که من با این تیپت که به هیچ دردیم نمیخوره برای همیشه نگرش میدارم. ببین تزمین همینه، تزمین اینه که بدونی این آدم ده سال دیگه پیر بشه، پیر بشه خب قرعه چی بشه پس. شه چی بشه تو همون پیری من بهش نیاز دارم اونم تو همون پیری به من نیاز داره. یعنی تلاشی که این دو آدم برای آینده میکنن تزمینه صداقتی که این دو آدم برای همدیگه نشون میدن تزمینه وقتی عصبانی میشم روش داد میکشم که نش کشیدم تا حالا و اونم برمیگرده بغلم میکنه میگه که مورد نداره عصبانی هستی اون تزمینه وقتی که یک ببین کل مسئله اینه عزیز من دوست من یه جمله بگم تموم بشه برای این مورد اگه بتونی برای یه پسر کل پسرهای دیگر رو خط بزنی تزمینه یعنی بگی یه فرحات بقیه کل پسرهای عالم رو خط زدم اون تزمینه دیگه بالاتر از این نیست وگرنه هیچ کسی تو زندگی تزمینی نداره که چطور ادامه بده و چطور ادامه نده و اینکه اگر فرها جدا بشیم خب جدا میشیم مگه چیکار کنیم یه عمر همه دارن جدا میشن با هم هستن مگه اتفاقی میفته نه یه امری هستش که ممکن اتفاق بیفته خدا نکنه ناراحت میشم چون دوباره به تنهایی این برمیگردم درسته ولی درسته تو تنهاییم یه سری محدودیت هایی برداشته شده بهم به دوباره پس داده میشه ولی من نمیخوام من یه فرهاد رو میخوام که باش یه زندگی یه همسفری یه همسفری رو با تمام دلم شروع کنم خیلی هم ببینین مهمترین قضیه اینه که بتونیم به این نکتی برسین که به حتی بدترین تصمیم که داریم میگیرین احترام بذارین اینا تزمینم بحث اینو گفتم بحث نهم جدا شدن بچهای گی از همدیگه خیلی چیزا هستش از دیدم تنوع طلبی هستش ببین ادمایی که بر حسب قیافه همدیگر انتخاب میکنن 190 جدا میشن ادمایی که بر حسب سکس انتخاب میکنن 190 جدا میشن ادمایی که بر حسب اینکه فقط و فقط و فقط دوره ای رو با یه نفر ببرن جلو مطمئنن و مطمئنن از هم جدا میشن و یه چیزی بگم چند درصد از بچه هایی که پارتنری زندگی میکنن گی دارن واقعا با این پیش فرض این رابطه رو شروع کردن که ما قرار با هم زندگی کنیم اگر شد ازدواج میکنیم کنیم دونه بچه میاریم زندگی میکنیم چند درصد با این پیشفرض رفتن جلو؟ اینو لطفاً بگیم به من شما حداقل خودتون شده تا حالا یه پسایی رو با این پیشفرض قبول کنیم بگین که الان که 19 سالشه چقدر خوشتیپ و خوشگل و خوشهی کله بعد 20 سال که میشه 39 سال 40 سال موهاش اینطوری میشه چطور قبول دارین اونو؟ قبول خواهین داشت واقعاً؟ یعنی بزرگترین مشکل که خیلی هم... چیک به نظر میرسه همینجاست چند درصد اون آدم که میم برای بی افی و شروع اف شدن با یه نفر هم الانش رو قبول دارن هم 20 سال و هم سی سال بعدش آیا میتونن از الان قولی بدم به این تر مورد کاکتوس نوشته بودین کاکتوس مال دو سال دو ماه پیش هستش دو ماه پیش نوشتمش و شاید یه صدای عشقی هم از توش بیاد نمیدونم اون به شما شنونده مطالب من هستیم و به شما هم احترام میذارم امیدوارم که همونطور که میگیم باشه و اون صدای عشق ممکنه فرهاد بوده و هزک پیشم خارهای یک کاکتوس هیچ وقت جمع نمیشه این اون پرندهی هست به اون پرندهی که روی اون کاکتوس میشینه بستگی داره که بلد باشه و بدون از بین خارها چطوری باید رد بشه آدم ها هیچ وقت قسمت تدافعیشون رو برای هیچ کس کامل جمع نمیکنن. گربه همیشه پنجه داره ولی اون صاحبش که میتونه چطور میدونه چطوری ورداره که اون ناراحت نشه تا پنجه نندازه بهش پس اون کاکتوس همیشه تیغ خواهد داشت این ما هستیم که باید بدونیم چطوری بغلش کنیم مگه میشه کاکتوس تیغ نداشته باشه بعد اینکه نوشته بودین خسته اما سخته دوست عزیز کی میگه سخت نیست گی بودن خارج از ایران هم سخت به چه برسه به اونجا ولی یادتون یادمون باشه من اینو چند جا تکرار کردم بچهای ال جی بی تی مجرم جغرافیایی هستن ببخشید متهم جغرافیایی هستن حتی به جای مجرم جغرافیایی میشن ایرانی بنمون توی داخل اون سرزمین بودنمون باعث شده ما مجرم شناخته بشیم متهم شناخته بشیم اگه ترک کنیم خیلی از مشکل ها میشه حل کرد من نمیخوام بگم که نه سخت نیست اقراقه اگه بگم که نه آقا سخت خیلی راحته میشه کرد نه من نمیخوام اقراق کنم سخت ریاضت کامله خیلی خیلی سخته ولی من توی این سیدو سالم هیچ وقت جای نرسیده که بگم به خاطر گی بودنم از خدا ناراضی هستم نه من به خاطر شرایطم ناراضی هستم من گی بودنم رو دوست دارم با افتخار می کنم عشقم رو دوست دارم و باهاش هم همیشه زندگی خواهم کرد انگه خدا بخواد بعدش و از اینم بگم از روزی که باهاش هستم یه احساس تقدس خاصی پیدا کردم یعنی احساس می کنم دیگه گناهی ندارم و پاک هستم خیلی مهمه برای من شخص بعدش همین فکر کنم دیگه مردی نموند خیلی معذرت میخوام اگه زیاد توپق زدم چون به همه نوشته هم فل به دایه حرف میزنم گاهی فقط یه نوت کچیک میدارم و همورم اپلود میکنم یه چیزی بگم اینا خیلی خیلی شخصی و سمیمی میگم اگه بدونی که همین فردا خدای نکرده از این دنیا میری انقد خسته نمیشی دنیا واقعا بیارزشتر از این حرفاست بچسب به اون چیزی که ارزشش بالاست سکاندار زندگی خودت باید خودت باشی اینکه اجازه بدی دنیا به این تیم وونور خیلی اذیتت میکنه واسه همین من به شخص اجازه نمیدم دنیا کنترلم کنه خودم میبرم جلو این زندگی رو خودم با این زندگی تا میکنم حتی تا جایی که به خون اجازه ندادم به کارهام تخالت کنن چون همیشه گفتم آدمی نیستم که بتونم خودمو به این قانه کنم که دیگه اومدیم به دنیا دیگه چی کار کنیم؟ نه اگه تزمینی هست اگه مطمئن که من قرار یه بار دیگه هم به این دنیا بیام اوکی این باش به با عنوان یک شخص یک کناری میشینم تا دفعه بعد که دوباره خواه زندگی خواهم کرد حالشو ببرم ولی چنین تزمینی وجود نداره دوستتون دارم ممنون که گوش دادین. یک کم طولانی شد حدود نیم ساعت شد. امیدوارم که هر جا که باشین سلامت باشین. بعد امیدوارم به همه سال جواب داده باشم. ممنون از اینکه وقت گذاشتین برای من. خداحافظ.